اونچه من میخوام در این بخش از عرایزم که عمده حرف منم همینه عرض بکنم این است که ما امروز در محاسباتمون نباید دوشاره اشتباه بشیم. نگذارید دشمن در دستگاه محاسباتی شما اثر بگذاره نگذارید اقوا کنه نگذارید تطمیع او یا تهدید او اثر بگذاره امروز نبرد جمهوری اسلامی با استکبار که با انقلاب آغاز شد و همچنان با قوت ادامه دارد همون نبرد پیغمبران با تواقیت زمان با شیاطین انس جنده ما دنبال آرمانهای بلند هستیم بال تشکیل جامعه اسلامی نظام اسلامی کشور اسلامی امت اسلامی تحقق بخشیدن به آرزوهای بزرگ پیامبران و صدیقان و شهیدان و دستگاههای شیطانی زمان یک جبهه با یک چنین حرکتی مخالفان قارچگانی می‌فرم. حضیت میکنن، تهدید میکنن. در این حال با همه زرق و برقی که اونجا به مقابل دارد و جلال ظاهری و توانایی های مادی که دارد این حرکت الهی و حرکت پیامبرانه راه خودش رو داره ادامه میده و پیش میره. اذر میگذره روز به روز توسعه پیدا میکنه روز به روز آمده پیدا میکنه